بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به همه دوستان و رفقا بخواه ارز کنم ما در اول هر جلسه اجمالی از روس مطالبی که در جلسه پیش مطرح کردیم مرور میکنیم یاد آور میشیم جلسه گذشته ترین جلسات ما بود ولی مطالبی که مطرح شد مطالب متعددی مطرح شد از اون جمله من فج بیخورم سه تا مطلب را به عنوان مرور دیجه همه همه مطالب رو نمیشه ولی به مطلب اشاره می اون سه مطلب چه به نظر بنده نقش اساسی داره در فهم مصنوی و نشانجر زاوی هر ستا زاوی دید مولاناست چه مولانا چطوری نگاه میکنه؟ اون سه مطلب را به طور فهرست عرض می کنم ختمتون یه یادتون باشه مسئله <تصفح> انسان کامل بود به مسابه لوح فشرده انسان کامل به مسابه لوح فشرده آفرینشه یعنی هر چه در آفرینش هست در انسان کامل هست این البته گفته شده قبلا هم گفته شده و شعری منصوب به حضرت علی هم نقل می کنند که ات از اما انچه جرمون سغیرون وفی چند تبا و بیچند تول آلم الاجبر تو خیال میکنی که همین موجود کدسو چه هستی درسته چه تمام عالم بزرگ در تو منتویست در تو پیچیده است در تو درجه در تو فشرده است این من لوح فشرده هر شردم اصطلاح است لوح فشرده قدیم لوح فشرده نداشتیم ولی تطبیق میکنه با اون چه چه اونا در نظر داشتند. یعنی اون چه چه تفصیل در عالم خارج واقع هست به طور فشوردهش در انسان کامل هست خب گفته شده ولی تفسیری و تفصیلی که شمس براش گاهی شده خب آدم را به به انیشه وا می داره چه معنی اون چیه؟ معنی اون میگه چه اینه چه تو همه اینها را چه موسی هست و ایسا هست و فرعون هست و دجال هست و این تمام خوبی و تمام و اینا رو در خودت باید ببینی معنی این چه لوحف شرده است انسان کامل میگه؟ چه همه اینا رو باید در خودت ببینی، بتونی ببینی و اون مجاویبات موسی و فرعون رو در خودت، در نفس خودت باید ببینی این رو. خب این یه راحت ما یه حرفی رو می‌زنیم برای بعد دقت نکنید که این حرف تو چجوری میشه. چیزیاش در نمیاد. تو گله اصلاحی که بعد از انقلاب خیلی درایت شد، اگر پیاده بشه، چی میشه <تصفيق> پیاده شدنش مشکل داره. آخرم زورتون چه؟ این حرف این حرف حرف گنده است. اگر روش دقت بکنی. مولانا می‌گوید که انسان به منزله انسان یعنی انسان بالغ رسید میگه به منزله کل است و کل تمام اجزا از او اگر یه تذیی را از او او از خودش دور بکنه دیگه کل نیست از کلیت میفته. ببینید ما یک کلی داریم یک کل داریم کلی یک مشترکات مثلا فرض بفرمایید چه تا اونها یه مختلف در نظر گرفته میشه و یه مفهوم مشترکی که بین این ها به همشون صادقه مفهوم ذهنی حیوان ما میگوییم ما حیوان در عالم خارج ما حیوان نداریم ما اس و خراش و شتر و من و همه و حیوان حمات رو داریم ولی حیوان به عنوان حیوان نداره حیوان یک چیز انتظائی ذهنی است ولی کل یه چیز خارجیش در عالم خارج وجود داره وقتی میگیم مثلا من کل تابلوهای همه تابلوهای که بر دیوار این اتاق نسبه حمرو به شما فروختم دیگه همه رو فروختم و اگر یکی را نخوام بدم اون از کلیت میفته پس مخالف میشه با اون گفتم همه رو فروختم پس همه نمیشه همه منهای اون یکی میشه پس باید اون رو وقتی میگم کل همه رو در میگیره مولانا چندین بار این مسئله رو مطرح چهده و خب شمس هم مطرح کرده و به کل، کل وقتی به کل اینا فعیلی تشجه می کنن روی کلمه کل کلی به کلش چه مبزونم، کلی به کلش چه کل یعنی هیچ چه نمیکنه نمی همش خب این یه بحثی بود اگر اینجوری باشه هر نیچ و بد را باید در خودش ببینه فرعون را در خودش ببینه موسی در خودش بشید همون چه مولانا گفته موسی و فرعون در هست دیگی توست باید دو خسم را در خیش جوست مثله دوان چه باز به اون زاویه دید مولانا مربوطه و اینه چه قرآن به مثابه آینه میمونه هر که در قرآن نگاه میکنه خودش رو میبینه میگه اینا ای در قرآن نگاه میکنند و از قرآن میگویند از قرآن نمیگویند خودشون رو در قرآن اونجوری میبینند و قرآن به مثابه آینه است هر در او چه نگاه میکنه خودش میبینه اینم یه مسئله خیلی مهمه اگر یاد تون باشه گفتیم اورانا مثال میزنه میگه الذين امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجرهم این آیه قرانه میگه هر کس طوری میبینه این رو الذين امنوا بسم الله الرحمن الرحیم ایمان برای هر کسی یه معنایی پیدا میکنه و عمل الصالحات با کار نیک بکنه قدم دوم بعد عرضشگذاری هاست مربوط به خود آدمه هر آدمی خودش این کار را خوب میدونه این کار را برد فلاهم از روهم به اینا پاداش داده میشه پاداش هم باز مربوط به خودشی خودش چی پاداش تلقی میکنه چی چی را پاداش تلقی میکنه بنابراین مولانا این رو به عنوان مثال میاره این آیه رو بنابراین همه آیات دیجر قرآن همین جوره شما با قران چه برخورد میکنید مم. و این اگر توستکک بشه همون حرفی که در همون زبان مولانا ابن عربی این رو مطرح کرده در فصوص هست که میشه هر از خدای متوهمه خودش رو خدای ساخت بر ساخته خودش رو پراستش میکنه اون دبری که منصوب است به امام زفر صادق که او یا فرموده است که مرچه خیال میکنه خدا دوتا شاخش داره چرا؟ برای اینکه نداشتن شاخش در نظر مرچه نقصه مرچه نمیتونه خدایی تصور بکنه چه شاخش نداشته باشه نقصه امید. خیلی موضوع دقیقیه این هم یه زاویه دیدیست که باید از مولونا به اسلام شناخت مولونا از این زاویه نگاه میکنه ببینید نیست که شما قبول دارید من قبول دارم یا نه بحث اینه که. تعبیری که عرض کردم فهم شمس و مولانا را به دست بیاریم اینا از چه زاویه نگاه می چردن. اینا جز به اون زوایه های اصلی که برایشون خیلی مهمه اینا بودن و مسئله ثومی که باز در جلسی مطرح کردیم موضوع انسان بود در دربندان زمان و مکان انسانی که در زندان زمان و مکانی، بحث اینه که مولانا میگه که من از عالم لازمان زمان لا مکان صحبت میکنم در عالم لازمان زمان لا مکان گذشته و آینده نیست نزدیک دور نیست دجال در آخر زمان میاد آدم در اول زمان آمده هم اول و آخر نداره دیگه اول و آخر اونجا معنی نداره این بحثی که مولانا مترشده این هم بحث خیلی مفصل و مهمه برای اینکه تمام ادراکات ما از عالم خارج واقعه در تمام ادراج ما نگاه میکنیم به عالم خارج در تاعتوب مشبکی از زمان و مکان حتی ما می میکنیم این زمان و مکان درش تنیده است هر تصوری که شما ما امروز در این سالان داریم راجع مولانا صحبت میکنیم با شما امروز این زمان در این سالن در این مکان ببینید منو شما صحبت می کنیم مولانا یا هفته گذشته صحبت کردیم راجع مولانا ببین زمان و مکان تنیده است در تمامی صحبت های ما خب مفاهیم مانند ماضی و مستقبل و ازال و عبد میجه در ورای این چبچه در ورای این دیوارهایی چه جلوی ما چشیده شده دیوار زمان و دیوار مکان در ورای این ماضی و مستقبل و ازال و عبد معنی خود را از دست میدهد مولانا میگوید قصه های مصنبی از اون آلم هست ما در شمس میخونیم که میجه و والله در دو جا از مقالات این مسئله رو مطرح کردیم، بعد مولانا را میخونیم میبینیم که میجه گفت المعناه والله شیخ دین بهر معنی های رب العالمین ات اطباق زمین و آسمان همچه خاشاچی ترن بحر روان بعد میایم میبینیم که مولانا میگوید که مصنوی وقتی پیش مرفی میکنیم از سویرا در دفترش ششومه میگه مصنوی جزیره است بر چنار بحر معنا میگوید که اگر شدی طرشان بهر معنوی فرجه کن در جزیره مصنوی فرجه کن چندانکه فرجه کن چندان که هر نفس مصنوی را معنوی بینی و بس این معنوی بودن به اون معنا مربوط است مثنوی از الگابش یه چه معنوی یه در همون چیز اول به مثنوی چه به گفته مثنوی معنوی و همینطور ببینید این آخر بسنوی اصلا ساختار داره یا نداره این چه تازه مطرح جردن اولا نمیخوام حالا دیگه وارد اون بحث ها بشیم ولی اونچه که خود مولانا مدعی است و میجه چه مستوی به مسابه جزیره است بر چنار بهر معنا و اونچه از اینچه بهر با بهر معنا میخواد آشنا بشه میخواد معنوی معنوییت پیدا بکنه بیاد در جزیره مصنوی تفرد بکند تفررج فرجهه ای کن. بیاد مولانا مولانا مصنبی رو مثل شش دفتر مصنوی مثل شش شهرچ در جزیره بر چناار معنا. این شش شه شهررج، مولانا به منزله فرار کنید که این موزیه میگن گاید راهنماست مولانا وارد میکنه این شش شهرج این قصه ها عبارت است از این راه هایی که توی این خیابون ها کوتاها ها به منزله خیابون هاست اون خورده قصه ها به منزله ها و پس کوتاهاست اونجایی که مولانا خارج میشه از متن قصه و برای ما سخنرانی میکنه مثل یک گایدی کنید در برابر یک مونومنت در برابر یک اثر خیلی مهم وایمسته و توضیح میده که این وسلو اینایی که دارند و میخوان تعرض بکنن از اینجا بی اختیار رد نشن توجه بکنن که مال فلانه فهبانه راجع بهش صحبت میکنن ببینید مولان راجع به مصنوی میگوید این همچون ستارست و قمر لیش بی فرمان حق ندهد اثر این ستاره بی جهت ببین بی جهت شرقی و غربی نداره راه بی جهت این ستاره بی جهت در بیجه ستاره بیجهت تأثیر او میزند بر گوش های وحی زو چه بیایید از جهت در بیجهات از این عالمی چه از این مشبه که زمان و مکان در شما تنیده و اینجا محبوس در بندان جهات هستید چه بیایید چه بیایی در جهت در بی جهات تا رانت شما را گرج مات هر ستاره خانه دارد در اولا هیچ خانه در نگنزد نجم ما خب مطابق حیعت قدیم ستاره ها از این خانه به اون خانه برج حمل برج های مختلف حرکت می کنند میگه این ستاره این ما این ستاره ای ما خانه نداره تو خانه نمی گذاد. هر جا جای سوزن در مکان چی در رود؟ جای سوز این چیزی که هر است هر جا بزاراریم جدا میسووداند پس مکانی نمیده نمیتونیم دراش در نظر بیم. جای سوزن در مکان، چه دردود نور نامحدود را حد چی بود لیش تمثیلی و تصویری کنند تا چه دریا و ضعیفی عشق مند مثل نبود لیش باشد آن مثال تا کند عقل مجمد را گسیل عقل مجمد عقل یخزده این یه را آبش بکنه چه راه میفته عقل متمر را عقل به پس امروزی و عقلی چه و این ده یه خوده تکونش میده هر چه بیاره خب مولونا تمثل میکنه به اون حدیثی که از پیغمبر نقل شده معلوم نیست مول پیغمبره مولا هر هرچه هست ولی درسته مطلبش این چه میجه که لا سباه هندالله و لا مساه پیش خدا شب و روز وجود نداره پیش خدا با آمداد و شامگاه وجود نداره این برای ماست که صبح اول روز آخر روز اول روز آخر روز برای خدا مطرح نیست و میگوید ماضی و مستقبل و ازل و عبد اونجا نباشد آدم سابق و دجال مسبوک نباشد چه این رسوم در خطه اقل جزوی است اینا را از دفتر ششونه بس من خوندم رو تو و روح در عالم لازمان و لامکان این رسوم نباشد پس او یعنی صوفی پس او ابن وقتی است در تفسیر وقت این حرفا را مولون امجند پس او ابن وقت لا یفهم همه منهو الا نفی تفریقت الازمنه چنانچه از الله واحد فهم شود نفی دوی نی حقیقت واحدی وقتی میگیم خدا یک منظور ما اینه چه دوتا نیست ولی تا یچی نیست ما یچی نداریم در خدا خدا یچی نیست خدا دوتان نیست و نمیدونیم دوتان نیست یعنی یه چی هست. اون میگه منظور وقتی میگه خدا یه است یعنی دوتا نیست. وقتی میگوییم اینجا وقت منظورمون نفی تفرده از من است یعنی یعنی گذشته و آینده در شاه نداره. وقتی که؟ فارغ از گذشته و آینده است فارغ از این تغییرات زمانی است حالا این هم یک زاویه از زوایای اصلی نجارش مولانا بود که دفعه گذشته ورش کردیم و این دفعه هم مرور کردیم برای اینکه وارد بشیم به قسمی که قرار بود بکنیم گسه ای که اولین گسه ایست که مولانا داره عاشق شدن پادشاه بر چنیزت رنجور و تدبیر کردن در صحت او مولانا مصنوی را با یک گسه اشک شروع میکنه با یه گسه اشک هم خاتمه میده. ده گسه اشکی چه با شروع میکنه این گسه ای عاشق شدن پادشاه هست بر چنیزتی چه بیمار شده اینجا چه رنزوره و اینکه چه, چه تدبیری در در صحت برای بهبود حال او چه تدبیری باید کرد این اولین قصه شه اون قصه شاهزادگان سه در شاهزاده ای که اونا بر دختر پادشاه چین عاشق میشوند چه در آخر آخرین سر ایست در مصنویه در, در ششم و اونم قصه اشک با اش رو شده با ایر تمام شده این قصه ارسردم چه گسه مولانا قابل تقسیم است بر تچ ها و چلانگسه ها و خورده ها این جزون تشکسته هاست یک قصه اینجا هست قصه بعدی هم تشکسته است موال توتی بعد قصه بعدی چلان قصه هاست. چه قصه اون پادشاه یهودی چی میخواد نسل هر چه مسیحه برندازه و اون راه هایی چه وزیرش پیشنهاد میکنه و دنبال اون بحث ها اون از اون چلانگسته است به معنی چلانگسته اینه گفتم مثل شاهرهایی که کوته های فری زیاد داره هی کوته های فری ازش جدا میشه این که ایچه میخونیم تشکسته اصل گسته را اجا شما براتون میجمم تجکسه اصل قصهش شاید مثلا پوزده بیست سطر بیشتر نباشه ولی این در این روایت مولانا تقریبا دویست و پوزده بیت شده تو و پوزده بیت تاش در متن قصه است من تا مد در که سه ده تا خروجی داره، ده تا خروجی داره، خروجی به اون معنا که از سر که مولانا میگه که آقا یواش اینجا یه همچی اینجا خونه فلانی، اینجا اثر فلانه اینجا اونجا وای و برای ما توضیح میده خروجی یعنی از قصه خارج میشه به این معنی از گسه خارج میشه و برای ما اون حشمتی را چه اصلا گسه را آورده برای این بهانه از گسه برای بحانه ایست و اون حرفا را بزنه و اونزاها ده جا ما را در این گسه نجمه میداره دلومون را و برای توضیح میده اون پوزده ده پوزده بیت آخر است بر روی خود گسته برمی بر روی خود گسته یه ملاحظاتی اون پوزده ده پوزده بیت آخره چه بعد می پیوندد با اون گسته توتی حالا آش اصل گسته اینه چه پادشاهی هست پادشاهی هست پادشاهی که هم ملک دنیا داره و هم معنا داره ببین جمع بین سلطنت قدرت و معنویت این همیشه ما اینجوری نداریم از میان انبیا ما چند تا نبی ما داریم که قدرت را سلطنت را با نبوت جمع کردن مثل سلیمان مثل اینا ولی اینجوری نیست که هر جا قدرت هست دولت هست منظور از قدرت قدرت اجرایی دولت نه قدرت معنوی <تصفح> قدرت معنوی بله همیشه در یعنی نفوذ اون حرمتی که لازمه معنوییته همیشه با معنویت هست ولی این قدرت که میگوییم قدرت مصطلح ماست یعنی اون چه در عالم خارج میتونه تصرف بکنه میتونه به اسلام دستش بازه هر چه میخواهد میتونه بکنه چه اون رو میگوییم چه حکومت یا سلطنت یا هر عنوانی چی میخواهید بجید حکومت با نبوت حتما اینجوریه چه هر جا نبی هست حکومت هم باشه نبوت هست حکومت هم باشه ما داریم خیلی از انبیاد با حکومت نبوتشون توان نبوده همچنین داریم چند تا از انبیاء به حکایت قرآن و به حکایت کتب عهدین به, به حکایت همین کتاب که ما کتب عهدین مثل تورات و انجیل و اینا به حکایت این کتب عهدین و به حکایت قرآن ما چند تا نبی داریم که اینها معنویت را نبوت را با حکومت با هم داشتند. این ظاهران نظر مولانا اونه که این شاه از اون شاه بوده برای اینکه بود شاهی در زمانی پیش از این ملچ دنیا بودش و هم ملچ دین یعنی این از هایی بود که هم معنوییت داشت و هم ملچ دنیا رو داشت ملچ دین را و هم ملچ دنیا رو داشت این آدم، این شاه، چشمش می به چنیزی و عاشق این چنیز میشه خلاصش رو اول میگم گسته رو آشق این چنیز میشه این پول میده این چنیز رو میخره و قدیم اینا اینجوری بود دیجه بازار نخواسان بود، بازار بردف و این چنیز ها رو همین جور حراز میددن و اون یارو چه روشنده بود، دلال بود سمسال می گفتن. یا خود اون به یه تجارت خیلی بزرگی بود در زبان گذشته تجارت برده خیلی تجارت بزرگی بود و سازوان های داشت داشته اینا را اداره می و معمولا این بردهها رو را چه در هر شهری در هر محلی اینا در بازار و همونطوری که بازاره فرد کنید که داشتیم برای فروش اسب و برای فروش گوزفند و اینا بازار برد فروشو داشتیم و همونطوری چونها متخصیصی نیداشتن و اینا چونها را میفروختن اینا متخصیصی داشتند و نخواست داشتن بردر دلال هایی که اینا را مثلا آراسته می‌کردند و لباس خوب می‌پوشندند و بعد برایشون همینجور چه یارو جنس وادش رو, رو تعریب می‌کنه که مثل اصل می‌بونه نمدلن فلانه، نمدلن فلانه، بیا چه هندونه‌ای آوردن، فلان خب اونم هم همینجور برای این چه مشتری دل بکنه خب می‌گوه چه هنرهایی داره، چی هست سنستیه وزشتیه چه هنرهایی مثلا آواز میتونه بخونه تمام این ها رو میتونه خلاصه این شاه از بازار بردفروش های تشهست میفته به یه چنیزی خیلی عاشق این چنیز میشه این رو میخره میبره ولی این چنیز مریض میشه به بعض این میاد در حرم پرشاف مریض میشه و شاه خیلی دستپاچه میشه برای اینکه تعلق خاطر داشته به این دختره و شه طبیبان زم کرده چپ و راست خب شاه هم گفتیم چه شاهیست چه دستپالش بازه دیگه به بس اصلا بستیت داره همه از فرمانش میره خب تمام پیزشجار ها تمام عطبار را زم میکنن و خلاصه دست به دامن اینا میشه اینا هر معالجه میکنند این بدتر میشه وزش بهتر نمیشه بدتر میشه شاق به کلی مزتر میشه و دیگه پناه میبره به آسمان و دعا میکنه و خیلی جریه و میکنه و خوابش میبره در خواب میبینه که بهش میگویند چه فردا برو در منظر در اونجا چه به چه جلوی تشمت بازه و نگاه کن اولچه ایچه از راه میرسد این فرستاده ماست و آدمیش میتونه علاز بکنه کارت را و دوات پیش و این صبح بلند میشه و همجور در منظر و تشم به راه یه وقتی میبینید از دور یه شبایی پیدا شد در خیلی مولانا در اینجا در اون چیزای شاعرانجی مولانا در قدم به قدم اینجا دیست دید چه پیرمردی داره میاد آفتابی در میان سایه ای ببین داره از دور مثل هلال مثل ماه اول شب ماه چه و هی همینجور میاد هی جلو و بدر میشه و خودش را نگاه همین همینجور یه آدمی از دور تصویر میکنه مولانو را از دور پیدا شده هی میاد نورانی هی نورش بیشتر میشه و آفتابی از میان سالی سایه سر میزنه بیرون و خواسته این شاه روی اون خوابیش دیده بود میدوند دیگه حاجب و دربان خودش میشه حاضب خودش میشه پرددار حاضب دارن در دارن همجور که پیش شاه همینجوری نمیشه خودش به جای حاضب میدوند میره به استقبال این مرد اینو میاره و میجه که ای بابا من اصلا بی خودی خودم را معتق کرده بودم من اصلا تو را میخواستم من عاشق تو بودم بی خودی رفتم و این خودم رو معطل کردم خب قصه که به ببینم میرسه آدم خیال میکنه چه خب مولانا اون چه چه اون شاه اون چه بی پیدا جرد دیگه دیگه دامن امپیر پیر دست بر نمی داره دیگه اون چی خنیز را ول میکنه، فراموش میکنه. نه، قصه قصه ادامه پیدا میکنه. یعنی که سه بند داره. یه بندش تا این بند دومش از اونجا چه؟ شاه این طبیب رو میاره بر سر بیمار. بیمار نگاه میکنه، طبیب نگاه میکنه میگه اوه هر معالجه‌ای چردهن، این معالجه نبوده، کارو بدتر کردن. اینا به جای اینکه موال الازش بکنم. اینا کارشو بدتر شد در طباب اینایی که تدبیر شدن دواها و اینا اینا اصلا بی و خلاصه این شروع میکنه بر میشه جه شما برید چنار خلوتی در این با این دختره نگاه می این دختره می بینید که سلام هر جایی سل... تن شالمه یعنی این بیمار بیمار تن نیست بیمار روحیه و چون بیمار روحیه این چیزی شروع میکنه ببینه چه این کزا شده خب این کنیزها را برده ها را از یکی را مثلا فرض که از سیبری جرفتن آورده یکی چیز از اروپای مرکدی جرفتن سگ اسلام ها این روس ها اینا خیلی مرغوب بود که از این برده های کنیزهای سگلبی میگفتن خیلی مرغوب بود و خوشجیل بودن و شروع هیچ رو میکنه از میپرسد خب اصلت از کداست چه دوری شد تا چی بودی چی داشتی از کدا آمدی و این دستش در نبز این دختر رو جرفته و این را داره دلزویی میکنه چه نه من مالذت میکنم و پیدا میکنم چه بیماری چیه و صحبت ها میکنه چه کجاها رفتی، خب بعد چی شد، از کجا آوردند، بعد چی شد، چی به چی فروختن، کجا بود تا میاد میرسه به اونجایی چه دختر را آوردند در سبرگند این میبینه رنگش برگشت و سمرگند خب چی بود؟ چی بود؟ چی خریده بود؟ دسته چی بود؟ اینجا معلوم میشه یه زرگری بوده و چه دختره ما این چشم میکنه دختره سخت عاشق همون است که این از سنگش گرفتن و آوردن و این دلش پیش اوست بنابراین چشم میکنه این بیماری این را که بیماری و علتش هم همونه بنابراین میاد به شاه میگه شاه هم یه های رو هایی را یه را به قول اینوزیا میفرستن به سمرگم با این عنوان که شاه دنبال یه زرجر بسیار ماهر میگرده گفتن چه در این شهر یه هست. هست بیمثاله بنابراین شاه دستور داده چه میان این زرجر رو پیدا میکنه این زرجر مادر مردم میگه چیجه این, این پول میدن چه خوب تمام میکنه خیلی بیده آقا این شاه فلان و به رو خوب میبینه چه خیلی عالیه بنابراین این جل و رو زم میکنه و بسلا در استخدام دیوان مایونی میاد زجر باشه شو. میاد و خیلی استقبال میکنن کنند ازشه ها از غنرهاش هاش جند و فلان و بعد گواشه هاش دختران این دختران اینجاست و دختران, دختران بهش میدن و این دختر گواشه هاش وقتی می‌رسه به زرجر خوب حالش بهتر میشه روز و روز حالش بهتر میشه و از بیماری نظار پیدا میکنه. بی از بیماری عشق اون دختره به این صورت وقت این قصه اینجوریه که باید دختره را از چنگ زرجرم در آورد و اثرجر اون طبیب معالیت دستور داده که هر روز یک قطره زهر در تعویم این زرجر اضافه میکنن و هر روز این زرجر همونطور که هر روز دختر حالش بهتر میشه هر روز این زرجر حالش رو به نقصانه روش به بد، بد میشه، حالش مریض میشه وقتی مریض میشه خب این دختر ازش متعفر میشه دختر ازش دیگه چشم دیدنش رو داره تا روزی که این زرجر هم میمیره و دخترم بجو این جسد متعفن اینا برداری ببرید و تلاش بکنید بنابراین دختره از عشق زرجر هم خلاص میشه این اون قصه ایش مولانا این را آمده و مایه این صحبتش جده و اولین قصه است ای حالا با اجازه شما میخونیم متن را بشنوید دوستان این داستان خود حقیقت نگته حال ماست آن اولا این شایرانه مولانا را من توجه نمیدم ولی شما توجه بکنید دوستان داستان همین همینجور این قدم به قدم میره در این شیرها علا رغم مولانا به عنوان شاعر ما مولانا را به وان مولانا میشناسیم شاعری یکی از چیزهای مولاناست از هنرهای مولاناست ولی واقعا من معتقد بودم از اول هنوز بر این اعتقادم باقی هستم که مولانا شاعر ترین شاعرانی که ما داریم شایرانجی مولانا در هر قدمی خودنوایی میکنه ای دوستان این داستان خود حقیقت نقدهال حال ماست آن راجب به حال در دفاعات بزرشته صحبت کردیم حالا میبینید چه اون صحبت ها اینجا معنی پیدا میکنه چرا اون صحبت ها را پیش از شروع در مصنوی مطرح کردیم بود شاهی در زمانی پیش از این ملچ دنیا بودش و هم ملچ دین اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خیش از بحر شکار یک چنیزت دید شه بر شاه راه شد غلام اون چنیزت جان شاه شاه برای شکار میرفته خودش شکار شده گذیه شکار را مخصوصاً آورده مولانا در لازم نبود که بگه شاه برای شکار رفت شاهده مولانا مخصوصاً این چیز شاعرانگی و هنر در اینجاستاویونید نظر نمیاد ولی خب ذرایف هنر همینه شاه میگه برای شکار رفته بود حالا میبینیم این شاهی که برای شکار رفته خودش شکار میشه یک کنیزه دید شهر بر شاه راه شاه راه بر راه خود شاه یک کنیزه دید شه بر شاه راه شد غلام اون چنیزت غلام در مقابل شاه غلام مثل چنیزت برده مزدچت را می گفتن غلام برده من نصر را می گفتن چنیز دیگه شد غلام اون چنیزت جان شاه ببین این بازی هایی که مولانا میکنه، با لفظ و این که در میان این الفاظ رو میبینید خب خیلی مهمه یک چنیزه مرغ در قفس چون میتپید داد مال و اون چنیزه رو خرید مرغ در گفص تن به ازداراب در آمده وقتی دختره را دیده این عاشق شده بروه در گفص تن تپیدن گرفته بنابرای مال را در راه زان اول فدا می کنه داد مال و اون چنیزش را خرید چون خرید او راو برخوردار شد اون چنیزش از گذا بیمار شد اینجا می رسیم اول خروضی مولانا اولین خروجی مولانا کسی را گت میکنه آه یکی خرداشت پالانش نبود یافت پالان گوش خر در رو بود میشود گفت که او خودش یک قصه است در سطر گفته بله یک قصه است در یه سطر آمده آن یکی خرداش پالانش نبود ها بین کار دنیا اینه کار دنیا اینه هیچ وقت نمیتونه همه, همه, همه اون چیزا رو داشته باشی فکر میکنی که اینم بگیرم تمام میشه اینم بگیری چیزی یه نابطه اون یکی خر داشت پالانش نبود ریافت پالان گرش خر را در رو بود کوزه بودش آب مینامد به دست آب را تو یافت خود خوزه شکست تمام موفقیت های دنیا پیروزی های دنیا سرش یه چیزی خوابیده یه گرفتاری یه از خوابیده و انسان نباید قافل بشه نباید دست خوش غرور بشه و فراموش بکنه که این دنیا اینه دنیا همیشه همیشه در معرض تزرزله هر پیشرفتی هر موفقیتی هر پیروزی در معرض شچست ما در یک عالم اینجوری داریم زندگی میکنیم مبادا غفلت در خوشی غفلت باشی غفلت دامن گیرت بشه مت کو فعل از اون چه میگویند قضا قضا اون چه یعنی غیر منتظر ما اصلا این ف چ کرده بودیم غذا این دیگه. اصلا اون از اون جایایی که فش نمی کردی خوردی خب این اول خروجی مولانا بود ده برمیگرده دوباره بگسه. شهر طبیبان جمع کرد و چپ و راست گفتجان هر دو در دست شماست. جان من سهل است جان جان موز حالا من جب جان من در مقابل جان مهم نیست خب آشب شده جی جان من سهل است جان جان موز دردمند و خستم درمان موز هر که درمان کرد مرد جان مرا برد جنز و در و مر مرا مرزان مرا مرزان مرا داره بازمولانا شایران نجیش گل کرده با الفاظ داره بازی میکنه جمله گفتندش چه جانبازی کنیم ما همه, ما همه ما همه ما همه سرباد ما همه جانباز جمله گفتندش که جان بازی کنیم فهم گرداری و انبازی کنی خوب ما علما همه با هم جمع میشیم و به اصطلاح شورای عالی پیشتی تشکیل دادن فهم گرداری و انبازی کنی هر یکی از ما مسیح آلمیست ادعاهاشون هم چه دنیا را گرفته ریجه ما بله در بود باجه فوق تخصوصیم هر از ما مسیح است. هر علم را در چف ما است. حالا مولانا باز اینجا میخواد از قصه بزنه بیرو. خدا خواهد نگفتند از بتر پس خدا بموندشون عزب بشر اینا روی خودشون حساب کردن روی توانایی های خود حساب کردن روی تمام تحصیلات و های خود حساب کردن در صورتی که اون ناتوانی بشر ناتوانی ذاتی بشر هست همیشه در کمی جر خدا خواهد نگفتن جر خدا خواهد ترجمه ان الله این الله جر خدا خواهد این شاء الله نگفتن. روی خودشون حساب چنده از بتر بتر بطر مستی چبر غرور دیه نگفتن که اگر خدا بخواد همش روی خودشون صاحب کردن پس خدا بین از عدز بشر ناتوانی بشر رو ناتوانی ذاتی بشر این بشری که در دو جا از قرآن هست از زعف سرش شده یک جانور زعیفیه وقتی باد در دماغش میپیچه فیرون زمانه اصلا نمیشه نزدیزش آمد ولی اون باد وقتی در بعد بدبخت مفلوچ زبون ترین زبون است خب مولانا اینجا باز میزنه بیرون از قصه این خروجی دومشه در این قصه ترچه استثناء مرادم است، میگه این چه گفتم انشالله نگفتن منظورم انشالله یفتی نیست مرادم اینه قسوتی کساوتی این دلیل دل تلین هر گرفته بود و و غرور ترچه استثناء مرادم قسوتی است نه همین گفتن این کلمه انشاءالله منظورم نیست چه عارض حالتی این حالت آرزیه عارض حالت ببین این اضافه مقلوبه حالت آرزی. آرز حالت یعنی حالت عارضی عارض حالتی این انشاءالله لفظی که میگویید این چه چیز حالت عارضیه یعنی اص... چیز چیز اصالتی نداره اصالت اون در دله ترکه استثناء مرادن قسوتی است که در دله نه همین گفتن این چه آرز حالتی است این گفتن این گولی این یه حالت آرزی است. ای پسر ناورد استس ناپ گفت خیلی آستان چه هیچ وقت این به زبان نمی آیند. ولی جان او با جان استس جفت گفت اگر چه به زبان استس شالله نگفته ولی جانش میدونه چه اون عض ذاتی بشر از اون آگاه جانش میگه که اگر خدا بخواد زبانش نمیجه جانش میگه. ترچه استث نام رادم قسمتی است نه همین گفتم چه آرض حالتی است، ای بار ناورده استثاب به گفت جان او؟ با جان استثناس جفت با جان انشالله انشالله با جان او جفته جان انشالله نه نه پوسته انشالله جان انشالله با جان او جفته باز برمی به قصه بعد از خروضی دوم هر چه کردند از الاز و از دوا جرش رنج افزون و حاجت ناروا یعنی اون طبیبان اون کنیزت از مرزتون موی شد از شه از اشخونتون جوی شد از غذا سرکنزبین سفراف فزود زود روغن بادام خوشچی می نمود آخه تو فسفراست برای رفع صفرا سرچندبین میخورن اینجا سرچندبین میخوری به جای این چه صفرا رو دفع بکنه، صفرا رو بیشتر میخوره روغن بادام میخورن برای این اون اول یبوست نف بشه و مزاد را بیفته این روغن بادام خوشچی مینو بیشتر از حلیله قبض شد حلیله حلیله مسحله. حالا از چیزا افتاده یه قدیم در زمان ما حلیله مصحله خیلی معروفی بود دو جور حلیله داشتیم حلیله زرد حلیله سیاه و خب این هر جا چه قدیم اینجا تب قدیم معتقد بود چه این معده شدید تمام بیماری ها اولش در معدس است بنا برید از بیمار میشد اول چیزی چی میگفتن مدهش باید تخلیه بشه. برای تخلیه هم یه مصحل میدادن مصحل وارد بود از همین روان وادامو ارز کنم و حلیله جو آخری حلیله خیلی قوی بود از حلیله قبض شد اطلاق رفت اطلاق در مقابل قبضه دیه وقتی مزاد راه میفته اطلاق اطلاق یعنی ویل شردن از می طلاق دیگه طلاق رهایی دیگه وقتی شوهر زن رو طلاق میده یعنی رهاش میکنه دیجه. من طلاق میخوام یعنی رهایی میخوام میخوام از دست تو رها بشم طلاق به معنی رهایی اطلاق هم از این کلمه است پس اون مزادی که از اون رو یوستد از اون حالت قبل رها شده آب آتش را مدد شد همچون نفت خب مولونا نفت را میشناد جلتای نفت فقط بابا نیست بله آب آتش را مدد شد آب میریزن بر این آتش رو خاموش بکنه آب کار نفت رو میشد هر چه میریفتی بیشتر میشد خب مالونا بر میجرده به گثه ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه چنیزش و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولی را ببین خود شاه مرچدین داره ها خود شاه مرچدین هم داشت ولی مسئله ولی مثل قضیه موساست و خضر موسی با وجود این چه خودش پیغمبر بود خب حوالش دادن اون خضر خضر ولی بود و میبایستی موسا خضر رو میدید با یه حکایتی با او میباید به سر میبود شه تو عزه اون حکیمان را بدید پا برهنه جانب مسجد دوید آخرین چنجر زی وقتی از دست داد همه جا دا میشه میری به سور خدا شه چو عزه اون حکیمان را بدید پا برهنه جانب مسجد دوید اونجا ببین دیگه شوچت شاه و حشمت شاه و اینا فراموش میشه پا برهنه شاه پا برهنه و میدوه خب معمولا اینا نمیدونن شاه نمیدوه و شاه با چفش زرینه چفش میپوشه ولی خب وقتی مسترسله پا برهنه جانب مسجد دوید رفت در مسجد سوی مهراب شد سجدگاه از اش شه پر آب شد یعنی شروع چاید شد بجریه چون تون بخیش آمد غرگاب فنا بعد غرگاب فنا هم مثل آریت حالت اضافه به غرگاب فنا غرگاب فنا غرگاب دریای فنا یا غرگابی چه به فنا متصلی چون <تصال> به خیش آمد به فنا بیهور شد وقتی به خودش آمد خوش زبان بگشاد در مدح و دعا مد و دعا ببینید اون چه ما میگویم گوییم نماز عبارت از, از مدح و دعا شما نماز لا سلات الله به فاتح از دیگه فاتح کتاب الشتاب چیه؟ فاتح از سوره همد اول از خداست الحمد لله رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یعودی تمام ستایش دیجه مده خداست بعد قسمت دومش هم دعاست اهدن از سراط المستقین سراط اللذینه. پس بینید نماز عبارت از مده و دعا هیچ چی دیگه رزیم نیست ستایش خداست و دعاست خوست زبان گوشاد در مده و دعا. چه کمین بخششت ملش جهان من چه چون تو میدانی نهان خب بحثی هست ابن عربی هم معاصر شمس و مولانا این مسئله رو مطرح کرده در همون حصوصش چه آیا این دعا کردن چجوریه وقتی خدا همه چیز رو میدونه آخو دعا یعنی چه ما تشریف معلوم میکنیم برای خدا چه اینو بکن اینو نکن نیجی دعای یعنی اینجی اینو میخواییم چین این دوری بشه و اینو نمیخواییم چین این دوری بشه اینو بکن اینو نکن بکن و نکن برای خدا ما داریم چه کمین بخششات ملچ جهان من چه گویم چون تو میدانی نهان حالم سر و خفیاتی تو از همه نهانی ها خبر داری ای همیشه حاجت ما را پناه بار دیگر ما غلط کردیم راه یعنی دوباره ما آمدن جا، از تو چی بخوام بجم بکن و نکن بکن نکن میخوام به تو بجم باره دیگر من آمدم اینجا و میخواهم به تو بجم چه بکن چه نکن اینجا باره دیگر ما غلط کردیم راه لیچ گفتی تو خودت گفتی تو خودت گفتی چه گفتی لیش گفتی چه میدانم سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرت تو در قرآن گفتی خودت گفتی چه اجرج من عالم السر و هم، ولی در جاهای مختلف از قرآن اهم کردی چه بیایید و دعا بکنید از من بخواهید قل لا یعبه بکن ربی لولا دعا رو کن ادعو ربکن رب تظررم جاهای مختلف گرآن هست از خدا بخواهید خب پس خودت گفتی که اگر چه خودت گفتی من عالم سر و خفیاتم ولی خودت گفتی که به زبان بیارید این را بخواهید زود هم پیدا کنش بر ظاهرت یعنی به زبان بیار گرچه میدانم چه چیه ولی تو بیا و بخوا چون براورد از میان جان خروش فائل براورد شاه دیگه چه شاه از میان جان خروش براورد یعنی از اون که هتل شروع کرد به ناله کردن اندر آمد بحر بخشایش به جوش در میان جریه خوابش در رو بود دید در خواب او چه پیری رو نمود خواب گرفتش در خواب دید چه پیری داره پیدا میشه این قصه خود مولانات با شمس تبریج بعد گفت اول گفت چه نگده حال ماست در حقیقت آن بعدم توضیح خواهد داد به شمس صحبت خواهد کرد. گفت ای شاه اون ندای غیبیت گفت گفت ای مژده مجده حاضاتت رواست گر غریبی آیدت فردا ز ماست فردا یک چخصی ناشناسی از راه می رسد اون فرستاده ماست چون چه آید او حکیمی حاضق است صادقشتان کو امین و صادق است به او اعتماد بکن فردا یه آدمی میاد یا غریبی، یه ناشناسی، از جرد راه میرسد ولی اون فرستاده ماست دوای درد, پی... درد تو پیش اوست به او اعتماد بکن حرفش قبول بکن در الادش سهر مطلق را ببین در مزادش قدرت حق را ببین اون با توانایی هایی میاد پیش تو به سراوه تو چون رسیدون و, و روز شد گفته بود فردا وقتی فردا شد و ادگاه فردا بود چون رسیدون و, و روز شد آفتاب و شرق اخترسوز شد آفتاب سرزد و ستاره ها از میان رفتند یعنی صبح شد آفتاب وقتی آمد شب شاه شب بود که رفت به مسجد و اونجا خواب در رو بود و گفته بودند که فردا جرغریبی آیدت فردا زماست این آمد و منتظر شد تا صبح شد و فردا شد آفتاب و شرق سر برزد در این کتاب های کودکان در زمان ما نمیدن مال چی بود اینا به نظر مال دولت آبادی بودی احیای دولت بودی باز شد دیدگان من از خواب به بعد آفتاب یک حالت کودکانه خیلی زیبایی در این شعرها هست این در این شعرها خیلی زیبا بود ما بودت چی بودیم اینا رو میخوندیم اصلا فوقلاده بود بله خلوص نمدن از بانجالله سر، از بله، خیلی گشن بود بی خود را بر میدارن، عوض میکنن یک جای دیگه محمل میدارن آفتاب شگ اختر سوز شد بود ان در منظر شه منتظر ببینید شاه در اون منظر در اون نظارگاه منظره در اون نظارگاه شاه در اونجا چشم دوخته بود به راه چی الان چی بیاد بود ان در منظر شه منتظر منظره و منتظر ببینید باش شاه میکنه. تا ببیند اون چه بنمودند سر دید شخصی فاضلی پرمایی آفتابی در میان سایی شما ببین این تکرار یای وحدت در این شعر به شعر چر سنجینی میده چه مزنه میده معمولا ما یای وحدت رو در آخر صفت میاریم جه یک صفت ها رو میاری میگه بود دید شخص فاضل پرمایی در آخر میاریم نه نه فند مولانا اینه دید شخصی فاضلی پرمایی آفتابی در میان سایه ای همین تشکیب آفتاب در میان سایه آمدن این که می جم مولانا و شعر مولانا در در چمتر شاعری با می بیریم این این نگاه رو آفتاب و شرک اخترسوز شد آفتاب در آمد و سوخت این بساطه این خرمن خرمن ستارگان رو سوخت خرمند سوخته شد او ب... فیاض تو بیاد وقتی وقتی صبح افتاب میخواد سر میزنه این ابر چطور آتش گرفته آسمان خرمند خرمن آسمان آتش گرفته ببین این قدرت شعر در مولانا دید شخصی فزلی پرمایه ای آفتابی در میان سایهای میرسید از دور مانند هلال هلال لاغر همینو لار میاد شب اول شب دوم شب سوم هی فربه میشه تا میشه بر میرسید از دور مانند هلال نیست بودو هست بر برششل خیال ببین خ... خیال را یک کتی این دور وصف بکنه اصلا ببین این آدم میاد از دور مثل خیالی و خیال را وصف بکنه این شاعر ببین اینه خیال هست و نیست هست نیست ما و نیست هست ماست نیست بود و هست برششل خیال خروجه ثوم نیست وش باشد خیالا در روان تو جهانی بر خیالی بین روان به روان روان ببین شاعرانگی مولانا چه میگم گدم به گدم خودش رو نشان میده نیست وش باشد خیالن در روان این روان با اون روان نیست وش بودن نیست نیست دار. نیست وش نیست وش این, این ساخت این این, این سازی مولانا کارخونه واجه سازی عجیبی داره مولانا نیست وش شما در جای دیجه نمی بینید کسی دیگری گفته باشه نیستش نیسوش باشد خیالا در روان تو جهانی بر خیالی بین روان این روان به اون روان بر خیالی سلحشان و جنگشان این جهانی که بر خیال مبتنی است بسره خیال با هم دارن می بر خیالی صلحشان و جنجشان و خیالی فخرشان و ننجشان از هیچ احساس خفت میکنه از هیچ باد در دماغش میپیچه. بر خیالی صلحشان و چلی چل جنجی چرا پوست هم را رو چی شد حالا دست به در آغوش هم دیگر؟ چی شد حالا؟ پس این حرفایی تا دیروز می فراموش شد بر خیالی سلحشان و جنگشان و خیالی فخرشان و ننجشان حالا حالا مولانا جهان بینی نگاه مولانا نگاه حکیمانه مولانا چه جهان را جهانی میبینه چه سر خیال در هم افتادن جنگ میکنن، سولد میکنن بعد میگه چاوا تصور نکنید که فقط اون اینا را میگم که در میدان افتادن و در تکاپو هستن میگه اون خیالاتی که دام اولیاس، عجس محرویان بستان خداست یعنی یعنی اولیای خدا هم گرفتار این دام خیاله مندها اون خیالاتی که دام اولیاست در اون دام چی افتاده؟ این معشوبکانی که دو روز مری میشند و میمیرند و و اینا نیست، این معشوبه نیستند اون معشوبه های عکس محرویان بستان خداست یعنی اینا هم خیال هستند ولی در خیالشون در دام خیالشون عجس محرویان بستان خدا میفته یعنی اون زیبا یعنی معنوی محرویان باغ معنا عجس محرویان بستان خداست خب از این خروجی بر می دوباره سرگسته اون خیالی که شهن در خواب دید در رخ مهمان همی آمد پدید برای اینکه شاه هم در خواب دیده اینم خیال بوده ولی این خیال با اون یک بیت مولانا سازی کرد برای اینکه این خیال را به اون خیال چه گفت بر خیالی سلشان و جنجشان این خیال را به اون خیال اشتباه نکن اینم خیاله اونم خیاله ولی اون خیالی که شاه در خواب دید در رخ مهمان همی آمد پدید برای اینکه اج چه محرویان بستان خدا بودید شه به جای حاجبان فاپیش رفت پیش اون مهمان غیب خیش رفت خب حاجبا دربان داره شاه حاجب پرددار دیگه تو پرددار به شمشیر می جند همه هر را هرچه چی را نمیدادن خب این به جای پرددار حاجب بفرسته به پیشواز مهمان خودش به جای حاجب دوید فاپیش رفت ببین باز وایسازی های خاص مولانا شما جایی دیگه نمی بینید فاپیش یعنی واپیش شما واپس می بینید واپس رفتن واپیش نمی این وایسازی مولانا این خاص مولاناست است به جای حاجبان فاپیش رفت پیش اون مهمان غیب خیش رفت هر دو بحری گفته بودیم که این شاش شاه دینم بود شاهدین با یک برخورد میکنه موسا با خضر برخورد میکنه مولانا با شمس تبریز برخورد میکنه هر دو بهری هر دو موضوع دریایی هستند هر دو دریا خوب بلدن شنا بکنن هر دو بهری آشنا آموخته هر دو شناجر ماهری هستند. هر دو جان بی دوختن بر دوخته این جانه هر دو بدونین چه کسی به که با هم ولی دوخته است جانه این دو به هم دوخته است بدونین چه کسی اینا توزه دوخته است هر دو جان بی دوختن بر دوخته گفت معشوقم تو بودستی ن یعنی نانچنید لیچ کار از کار خیزد در جهان این عبارتی است که تعبیری که ما در آذربایجان خیلی زیاد داریم ایش, ایش خار دند خار اصلا از این تعبیراتی بر سر زبان هاست گویا در فارسی هم همچون تعبیری هست ولی خیلی زیاد زبان زد خاص آم نیست فرودان از مولانا یک بیتی آورده زهر سو بانج نای و چنج مستان زهر کاری بلا بد زهر زاید از کار کارزاید ولی ما در ترکیه میجیم چه خار. از کار کار کار خیزد از کار درست ترجمهش از کار کار خیزد ای مرا میگه خب مثلا ولی از همین ببین از همین کار کار کارزاید یعنی شما ببینید که از این رابطه عشق ای یه ظاهر، از این قصه ظاهر اشکی اون مطلبی که مورد نظر مولانا داره مطرخ خواهد شد همونطوریش دیدی در این خرودی های اول دوم و ثبوم اون نظر مولانا به یک جای دیگری ای است یک مطلب دیگری است ولی این بحانه است از این بحانه ها میاد که راهی بدا بکنه حرف خودش رو بزنه. ای مرا تو مصطفی منسون عمر منسون عمر سخت کمر بسته پیغمبر بود که و هیچ کسی هم باش نمیشد چوخی کرد را خیلی آدم متاسفی بود خیلی سخت ای مرا تو مصطفی منسون عمر از برای خدمتت بندن چمر این دیگه بیعت میکنه با اون ولی که من در خدمت تو خواهم بود همون قصه موسا و خجرم هست از خداوند ولی توفیق خروضی چهاروه از خداوند ولی توفیق در خانستن توفیق رعایت عدب در هنحال ها و بیان کردن وخامت ضررهای بیادبی <تصفيق> مسئله ادب <تصفيق> <مثل> <مثل> هر چیزی ادبی داره ادب خاص به خودش داره این ادب چی من نمیدونم. او آیا اخلاق آیا اخلاق عملی. یا ممزوجیست از عرف‌های تا افتاده شده دیکو و اون قهوی اخلاقی نمیدونم ادب درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حال ها خودت گم نکنی در هر حال ادب نجه دار و بیان و وخامت زرارهای بیادبی خدمت دو نرچردم چه ببین مولانا در این عنوان ها این اول یواشه باشد یواشه باشد اونوانها را بست میده ببیند قبلا این عنوان قبلی چه آورد به این آشک شدن پادشاه بر چنینجک رنزور و تدبیر کردن در صحت او بعد عنوان بعدی بله چشم حشتار میدن چه وقتت تمام شده چشم عنوان درمیه خورده بست بیشتر داره ظاهر شدن عجز حکیمان از معالضه چنیزت و روی آوردن پادشاه به درگاه الله و در خواب دیدن او ولی جیرا بعد این عنوان بعدی باز بسته یه ذره بیشتر تا خواهیم رسید اونجایی که یه یه صفحه تمام اون مثل یه مقاله از خداوند ولی توفیق درخواست توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی از خدا دعایی توفیق ادب بی ادب محروم جشت از لطف رب جلسه را با این بیت خاطبه می ده. این بیت هم از اونهایی بود که در چتاب های کودک قدیم می و حتی برای ما سرمشق می دادن چه ما تکرار بکنیم دفعه این بیت رو برمیستیم از خدا دوییم توفیق ادب چرا اینا را ما ول کردیم آخ مجب چه داشت مجب مخالفه مثلا شونات من بود <صحاب> چیزای گشنگی داشتیم منادار این رو ویل شدیم خیلی مزرد پر. خیلی مزرد